گفتیم من بیا آقا خوبی؟ کار دوشتون گفتیم من بیا میخوام لباسهای پسرم رو جمع کنم بدم به خیلیه دون رو به بیا چو بدون ببریم بدیم به خیری میکنه؟ دلم میخواست باید بیام ولی هم یاری نمیکنه. اونجا یه رفیق دارم اسمش هست دکتر جلال مفخم هاستم ببینمش این ریموت ماشین پجمانه اگه رفتی اونجا دکتر رو دیدی بهش سلام برست اون به گفت قاسم گفت اونم تنی شده چرا سر به من نمیزندی چشم خیالاتون راحت شما از دارد کنید من اینا رو میبرم خیلی کاری با من نداریم؟ نه مواظب باش چشم خواه بر خدا میبرم. چه راحت راحتترم. سلامتتون راحت باشه. مو واسه به خودت واسه چمدون بزرگی. نه، خادتون راحت باشه. لازم هم اینجا بگو حالا دیگه وکیل میفرسه سراغ من چاره برام نذاشتی آخه این کارا چیه میکنی مادر من وکیل یه طوری با من صحبت میکنه انگار من میخوام ارث و میراث خواهر برادرمو بخورم مگه غیر از اینه چی بگم به چه زبونی میگم یکم صبر کنید داخل سر جگر بذارم تا قرون آخرشو میدم ببین اگه دیدی تا الان صبر کردم فقط به خاطر این بوده که خواهر برادرتون به هم نخوره وگرنه که وکیل گفته اصلا بهشون بگم وکالتشون از طرف پس بگیرن مکیله گفته؟ بله مکیله غلط کرده خامیان اگه تو این چند روز پول بچه ها رو جور کردی بهشون دادی که دادی اگه ندادی باید به دادگاه آخه شما که نمیری از من شکایت بکنی که حالا ببین باشه یه چند روز صبر کنید یه خونهی خریدم الان گذاشتمش برای فروش پولش که اومد دستم یه بخش از همه بچه ها رو میدم خداحفظ چه چکا میکنی؟ داشته میرفتم با مادرتون صحبت کنم تو با مادر من چه صحبت داری؟ به سادت کنم با سلامتی بچه محلی به چی باشه؟ عمود بانگاهی میگو با خونه منو گذاشتین باست پروش گذاشته باشم به تو چه ربط داره؟ من که گفتم پولم هم جوره از کجا؟ البته تو از این حرف زیاد زد. یک دو روز وقف بدین جورش میکنم خواه جونو بچه مقصم بخورم؟ اگه تا فردا جور شد شد اگه نخونه مشتری داره من پولشو می‌خوام خداحافظ یه کاری کردم که این دختر قشنگ باور شده بین من و آرش چیزایی بوده <تصفيق> آفرین کارو تالی بود من موندم اگه من نداشتین چیکار کارو ما این هم دیگه داشت بارد رو باز این پولی که با هم دیگه توافق کرده بود خدمتشون تین کارو من تموم شد آره فقط وقتی بهت زنگ زدم باید بری شفایت تو پس بکری به خاطر این دختر روناست قرار شد سوال بی جانب برسیدی مسقامت ده تا من ازش گرفتم تازه اولشه این لیست اولای حفیت قبل مورد اول تا حالا چند بار تکرار شده چند تا امتباه دو پیشنامار داشتیم که اونا رو میگم پینت بگیر بهتون ممنونم اینا رو آقا جامعا مرده دیدم آمیلا بهشون نشون دیده اتفاق برشون نبیس شده, شده کرده اونا یه نس من دارم کارو کنم. ولی قبلش برم از مشترک خالیم اونجوری فقط اختلاف بیشتر میکنم نمیخوام آرش پولی برداره بر نمیداره مطمئن باش مطمئن باشم از کجا اگه برداش چی چون من میشناسمش نمیکنه این کارو تو هم فیل کن دیگه. دعا کن برداره بر سلام اینا همون کاست سی دیا سی دیا به سلام. لباس شما به نظری کار داشتید. بله الهی. سلام. صد خوبی؟ خوش اومدید. فهمی؟ چیزی از بنفشه فهمیدی؟ بله. بد گفتم که بنفشه شاکری کلا پیله است. خب اصلا چیزی بین اون آرش بوده یا نه؟ ولی بله هر کیه یه چیزی میگفت. ولی ظاهرا آرش رو دوست داشته. یه حداقل خودش اینطوری به بقیه گفته. ولی آرش رو نمیدونم. نسرینم چند وقت پیش دیداتش. بهش گفته که آرش رو پیدا کردم و هنوزم دوستش دارم حتما اینجا هم اومده داره؟ رفته شکایت کرده که این برنامه رو من با آرش نمیشم و صحب از این حوش و استعدادا بعیده داشته باشه این حتما میخواد آرش رو اذیت کنه حالا برای شما چه فرقی داره شما که همدیگر رو دوست دارین حالا اون هر چی بگه. سلام, سلام حال شما خوبی بشکرم آقا رامین هست؟ نقیه تشفیف ندارم خانون نظری چه؟ خانون نظری به این شوهر سابقه نیست اینجا چی کار میکنه؟ با رامین کار دارم خیلی خوب من دیگه برم بر کارم یادت نرزن بزنیم باش ممنون خوب نبرم خوب خداشکر خوشبینه. خوبه. خدا رو شکر که سایه ماله بالا. خوبه؟ خدا روش. سلام. حال شما. بفرست. می‌بینمت. سلام. شما می نیستی؟ نه. ما اومدیم فقط بگم خیالش بابت اون دختر راحت باشه بشه. بنفش شوکه. در روشو می‌کنم. پاس شکایت صرف نظر کنم. چه جوریه؟ کم بعد قلعه ولی با پول راسی میشه زیعه پول نمیرم مهلایش رو برادم <تصفح> رونا من دیگه اون آدمه ثابت نیستم نمیخوام می‌خوام کنم. ولی دارین این کارو میکنین. آخه تو اصلا من فرصت نمیدی حرف بزنم. ما حرفی با هم نداریم شما الان اینجا فقط یه ای سرمایه‌گذاری. هیچ رابطی هم به من نداری. ولی من هر کاری که کردم به خاطر تو بوده. آرفانی. اگر این پول به خاطر من پس تو شرکت، برام می صحبت کنی شرکتیتونو بزنین برم. من ترجیح میدم این پروژه به خاطر اینکه هر روز بخوام با شما سر بزنم. نساس همم برداریم به این نمال زندگیتون فقط همین نبوده دوست داشتم کنارتون باشه هم کمکتون کنم اگه از دستم برگیه دلوته من چند بار باید بشم بگم آدمی دیگه یه دوست دارم خب این آدمی که میگن دوستش دارین کجاست من این همه اومدم اینجا ندیدم ایش همیشه هم نراحت مستربی دیدن شما نراحتم میکنه ایکم بیشتر فکر کنه شاید انتخابت غلط باشه مهلا میتونم بهتری زندگی بارت بسازم حاضرم هر کاری بکنم یه بار دیگه اون بله رو ازت بگیرم دفعی قبل قطر ندونستم نفهمیدم تو دستم هم خالی بود الان زندگی به ببات بگیرم جواد خوش آمدی باشه مو که عادت کردی من مجبورم به همه چی عادت کنم برای خودت چایی بریز بده بیا چای زیاد خوردم ما هم که رو درواسی نذاریم اومدن باید حرف بزن این که توی خیریه اومده بود که حسای دستم فامیلته؟ نه نه نه بیمارستان رفته بودن به دیدن پیجمان اونجا کمکم کرد او صافر کشه داخل وزورگی بود لازم فون بیاد بهتر میشه هونم بیاد هیچ فرق نمکنه. کنه اینجا به وجود اومده که با هیچ چی پر نمیشه شه می فهمم یک خواهشی می ازت بکنم خواهم بهم بگی تو اون تلفن آخری که پژمان بهت زد دقیقا بهت چی گفت پژمان گفت بابام با کسی دشمنی داشته در حق کسی بدی کرده کرده چرا میپرسی؟ گفت میخوام بدونم هرچی فکر میکنم چیزی یادم نمیاد باسته تو تو اسلامبول مغازی که داشتی شریک داشتی نه؟ آنه عزت اون که مشکلی نداشتی نه چه مشکلی؟ هیای داشته مغاز همون گرفت تمام جنسامون همون ستوخت و اون از بیمه گرفتیم اون رفت دنبال کارکاسبی خودش منم رفتم و این ماهی سر را را انداختم من فکر میکنم بهتر بر پیش ازت شاید اون بتونه بهت کمک کنه این سال هاست که ندیده میشه از کجا پیداش کنم؟ ببینم یادت نمیاد کجا مغازه گرفت چه کاری رو شروع کرد؟ رفت اونبال کاسبی کیف و کفتو سپس سالان تازه از کجا معلومه که تا حالا زینده مونده باشه؟ خب اگه از این بچه هاش که هستن الان برم یه چای بریزم ورا آره. جانم مانجم جان. کار شرکت خوب پیش میره؟ بله خدا رو شکر. پس کم کم بادونیم باید بینیم خواستگاری یه شیرینی بخوریم که تکلیف این دخترم روشن بشه رونا خوبه؟ چی شدی یه سراغ رونا رو گرفتین؟ هیچی دیدم این چند روز حرفی ازش نمیزنی گفتم ببینم چیزی شده چیزی نشده پس اومده بود اینجا چیکار؟ کار سلام سلام, سلام. رو ناومده بود اینجا بله دیدم در ماشین نشسته بودم دوشن جر و برس میکردم تو داشت نگفتش شده نه یه چیزی هست که رونام انقدر نگرانشه نه چیزی نیست من وقتی بچه هم به دروغ میگن میفهمم همونطور که تو دروغ گفتی فهمیدم سامان باز به زنگ زده رامی خبر داری؟ پیام داد گفت تو راهه داره میاد. کارش خیلی زیاد شده میگم تو شکایتتو نمیخواید پس بگیری؟ برگردی کارخونه بابا پس میگیرم برگشته دیگه مادر به من گفت موقعته میگفت حال بابا خوب شدیه کاری به کارخونه نداره ما الان خیلی تحت فشاره تو حداقل دیگه بیشترش نکن من باید به فکر زندگی باشم مامان نباید باشم همه این کارهایی که دارم می کنم که ما یه سر و سامونی بگیرم از این وضعیت در بگیرم می حق آمدن خق باتوه صدمه دیدی چشه ترسیده همه اینا درست ولی رامینم هم یکی می پشتش باشه می بینی که همه ایسایش هم داری من باید چی کار کنم مامان؟ من از صبح تا شب دارم تلاش میکنم پولانون رو جمع کنیم بریم سر خونه زندگی خودمون از این وضعیت بلا تکلیف در بیاییم رامین انقدر دست دست کرد که اون خونه هم از دستمون رفت با این پولی که ما داریم کجا رو میشه گرفت من مطمئنم رامینم دلش میخواد شما زودتر از اینجا برید داره زندگیش مستقل بشه بچه دار بشه ولی اینجوری که تو تحت فشار قرار رو بزشتیش. دل سردش میکنی سلام بابا سلام بسته نباشه بنا چه اینقدر دیر اومده؟ هفتم سراغ بایاتو رمزان دو خودشونو کشتن که چکارو بگیرن و جستارو پس بدن من قبول نکرد پاس نشه به چه درد میکنه تاریخ چکار هم عوض کردن شون گفتم که میزرم به حساب اگه پاس نشه دیگه برگشت میزنن نجا بوزایی اینا یعنی مشتری های قدیم و خوشکول و خوشحصاب بودن شام خوردیم ببا؟ حالا پس فیلا. خیلی سلام. هر شب خواهی همین موقع بیایی خونه اینجوری مریض میشیا بادت مهمه رامین معلوم جنگ و دعوا ندارم آ. پول تو به زور از من گرفتی مریتم میخوای؟ الان میای میگی جنگ و دعوا ندارم یه بار خواستم دو کلمه مثل آدم با هم حرف بزنیم هر وقت شکایت تو پس گرفتی بیا با هم مثل آدم حرف بزنیم برو نگران یعنی رو رو نباشی. چیز خاصی نیست. من نگران یه چیز دیگم یه شوری همش تو فکره. باز آگاهی بوده؟ باز این پسر زنگ زده به من نمیگه. ولی فکر کنم امروز باهاش قرار داره. من میخوام این سامانه بدم دست پلیس. مامان جان، ولكمز پلیس کار خودشو بکنه. می ترسم آمارش. قربونت برم از چی میترسی؟ نمیدونم. ولی دلم استسی و سرکه میجوشه. چه دوستش داره؟ آرش، مست رضای خدا. که تو یک کلمه با حرف میزدن میخوای دعوام و را بندازی؟ مامان جون شما نمیبینی این همه مدت این پسر اینو سر کار گذاشته وقتی هنوز دوستش داره. برای همین میگم میترسم. میترسم بازم گولش بزنه من خودم پیداش میکنم آرشت تو رو خدا بازم دوا مرافع رو نندازی خون فکر کردی پس تو گرفتی مثلا فرض کن من باید بیام خانوادم رو چیکار کنم به ما اجازه ازدواج نمیدن اونا وقتی ببینن هنوز بایم علاقه داریم مخالفت نمی ساما من نمیتونم تا آخر عمرم مثل فراری زندگی کنم چی خوب فراری زندگی کنیم ای تو بقای از ایران میریم بعد اجازه میگیریم میریم یا سفارت خونه حق میکنیم کمی کشوری که ویزا را این ترکیه زمینی هم می‌شرم. یه بار خودت رو معرفی کن. من بهت قول میدم تا وقتی که بی‌گناهی ثابت بشه من خاطر ماینی نیستم. تو نشون ثابت کنم چی؟ تو با بالاخری که به با قاتل و مرحوم رو پیدا کنم باید امیدوار باشی به خاطر من. اگه منو دوست داری. آمد. بابا اگه منو بگیرن میفهمن تو گذشته اون با ما چی کار کرده بعد میدونی حکمش چیه؟ میدونی حکمش چیه؟ حساس این ادام این میکنم خب شاید اگه پدرش بفهمه که تو این زندگی چی به ی تو عمری نظرش عوض بشه بابا قتل موضوع بابا تا 100 در چیزی ثابت نه کسی بالا چی پیدا نمیفرستم من این کار نمیکنم من کارمو میکنم هر طور شده از زیرم میرم تو هم میخواد با من بیای. آدمی داد چرا که من خاصی با کوشش همه نقشه‌ن می‌کشیدی برای چی خاطره منو بازی دادی ها من نگاخود بازی دادی که رقم مزایده رو بگی یاره به کدی بزرگتر نداره اشتباه کردم خودم اشادیو دوست دارم خاطره منو نیاد برای چی باش قرار میذاری؟ ها واس چه نقشه‌ای دادی نقشه‌ای چی هیچی من دوستش دارم شادیو میخوام هم دیگه گفتم اسم خواهر منو نیاف نمی‌دی باره دیگه یه بار دیگه دور و برش پیدات با همه دستای خودم خافت می کنم دور و برش نه هر چی دیدی از چه شکودید؟ آخریش رو دیدم بابا چقدر قشنگه <تصفيق> نه عزیزم اصلا من فرد و پس میخوام میخوایم تهران با عزیزم با اون بچه کجا میخوای بیای؟ من سر مزارش نرفتم بابا دارم میمیرم قلبم داره میترک خب میفهمم ولی چاره چیه بابا تو الان باید به فکر بچت باشی من امروز میخوایم ببرمش دکتر بهش میگم میارمش به بارک بابا هر کاری میکنی با اجازه دکترت باشه من‌هاش نگران شما تنهایی اونجا چیکار می‌کنی ستاره دیروز بهم به سر زد بابا حالش چجوری بود خوب نیست اونم ناراحت کی باورش میشه این باور رو من هنوز باورم نشده بابا هر روز منتظرم می‌زنم می فهممت بابا منم شبا چشمم به این دره که باز بشه و پیشمانم بیا تو چرا قاتلش رو پیدا نمیکنی؟ دیگه بهش فکر نمیکنم بابا چرا خب فرض کن پیداش کرده. برای منو تو چه فرقی میکنه؟ کن بچه تری گریه بابا الو سر آباد بچهت یاریم لکم بابا اون بچه شیر رو بخوره گناه داره سر ام بر شده بابا من ازت خدا فسیم کنم بابا او ازیب بچهت داره. باطل پسرتون کاری نداری؟ لحظه شماری میکنم که بگیرن به دخترم اینجوری گفته که غصه نخوره آخه اون بچه شیر میده آخ کاری داشتیم به من زنگ زدیم بیام میخوام برم پیشه شریک سابقم شاید از اون بفهم که چی شده کی بوده که اومده سراغ بچه تلفنت جواب نمیدی. دارم راندگی می کنم. امروز آخرین مهلت تا حل جوره. تو زور میخوا. دارم میرم جایی ممکنه یکم دیر زود بشه خبر میدم بهت. امروز کار واجب دارم من. نهایتا تا عصر دلار باش. جوشو بهت خبر میدم. نداریه نداریه به شما نمیشه گفت شما به کار و بارات باید انتقال صندت داره انجام میشه کم کم باید جمع کنین از ماهی سر را بریم تو جایی که من میدونم اینطوری نیست هنیشی من رفتم به داره توصی دادم قرار جلسه بزارم خب فکر میکنی چی میشه من برنده قانونیم شما برنده قانونی نیستین خوار پشمنم قراره بیاد مثلا بیاد اشکار میکنه مطمئن باشیم بیاد دست رو دست نمیذار و نمیذار و نمیذار و شما بشه. زمین که مولمن هست نیست من میدونم. از کجا میدونی؟ سامان به شما رقم مزایده رو گفته اینا از کجا میدونی؟ من خودم رقمم بهش گفتم سامان از پدر آقا پشمان کی نداشت برای همینم دنبال رقم مزایده اینجا بود که به شما بگو آقا پشمانو بزن زمین بس به من نگین که سامان بهتون چیزی نگفته. من از همه چی خبر دارم من که زیروبار نمیرم ولی الان منظورت از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که شما خودتون خوب میدونین که با تقلب برنده شدین اون زمین حق شما نیست چند سالته دختر جون. میخواستم بهتون بگم قبل از اینکه خواهر خوهر آقا پیش من بیاد همه چی خودتون توامش کنین برای حالا که یه جور کوتاه نمی آین بذاریم بهتون بگم که منو کارمندوی اینجا همه کارگرای ماهی سرا به خواهر آقا پیجمان کمک می کنیم تا ماهی سرا رو از چنگ شما در بیاریم همه این حرف و تهمت سامان کجا که بشه این موضوع ثابت کرد زده پیجمان کشته و رفت سامان قاتل آقا پیجمان نیست اینو از خجو می من انوز باش در ارتباطی ها فکر نمی کردی خبر داشته باشم نه به اخر من خودمو دارم پس جفتک نه انداز چون انوز نمی با کی طرفی با قاتل بجمان ارتباط داری بدونی پلیس به فامید چی میشه؟ شیش هریک چور. ببین میتونم لذت کنم. ولی اگه مثل بچه آدم سر تو کار خودت باشه شاید اینجوری گرفتم. por una تو کردی؟ تو درباره من چه فکری کردی؟ فکری من خانوادم ول میکنم با تو میان الان چاره دیگه داریم؟ من حرفامو زدم دیگه همیش حرفی ندارم هر کاری دوست داری بکن نمیفهمم تو چه ته امروز چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ چی شده؟ هیچی من چی شده دیگه داری دروغ میگید؟ به احرام اومده بود اینجا با که چی؟ از رابطه من تو خبر داشت بهشم کلی تهدیدم کرد که راجب موجه رای تو و قیمت موزه درمی نزدن وقت تو میگه فرار کن چی گفت بهرامی بله بهرامی چیز خواستی نگفت چیز غیر خواست چی گفت وای تو چرا برم کردی به بهرامی اون این آدم زبون نفه هم میکرد چه درنش درمیاد میگه این آدم نفهم هم هر چه گفت نه کلی گفتم. ای دقیق بگو دیگه من دارم تو ما تو جدی هست میزنم. ما چیکار به اون داریم؟ ما داریم به خودمون حرف میزنیم رفتن راه چاره نیست. نمیتونم بمونم. دیگه نمیتونی برگردی. دیگه نمیتونی بیگنایی تو ثابت کنی. بهرامی هم ماهیسرا رو حمایت میشه من اگرم بمونم نمیتونم بیام جلو. اینجوری منو دوست داری؟ نمیتونیم با هم ازدواج کنیم حتی که بیگنایی من ثابت بشه. چه حرف حرفو تو از احساسان نسته تو خود خبر داری دادشت چی؟ مادرت موافقم امروز آرش اومد سراغم چیزی رویت نگفت؟ نه گفتی دیگه دورو بر تو نباشه استحبم کرده قتل آقا پیجمان که پیدا بشه من خودم رازیشون میکنه چی میگی اصلا مسئلهش قتل پیجمان نبود بابا این گفت حتی میدونه کار من نیست مسئلهش اینه که من با احساس تو وازی کردم من خودم علش میکنم اونه الان نصد تو بیعتمادم بهشون حق نمیدی؟ چرا؟ چرا ولی نمیتونم برای آینده ای که نمیدونم چیه اینجا بمونم بابا خود تو گفتی بابای پیجمان فمیل انگیزه من انتقام بوده خب آدم میفرسته میاد دنبالم پیدا کنه کارم زاره خب تو نکن. بدن میشیم سر فرصت فرصت به شرط میتنیم به تصمیمی گیریم دیگه شادی این مرسی که برمانو دیگه درم بدن نازم درم بدن نازشت تهدیدم کرد من دادم شد آدم کیا سم باورم نمیشه این برا سر پشمانه بوده انتقام منو از پشمان گرفت چرا منو آقا شما چه غلطی میکنی غلط تو میکنی که خانم جوامریو تهدید کرد سرم کشته شو رافت 5 میلیون از حساب مشترک تو بعدش بس... مگه بس... بتونم چه اتفاقی افتاده شد کاری از دستم من تو بعد معضی گیر افتادم توش این قلقلا اینو بفر فقط دور خودت بدبخت میکنی حسی که منو سر کار گذاشتی چه روزی سرغیدم کردی با این کاری که آراش کرد دیگه بهشت میون نداری تو یا تاری کیو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 ماه از راه رسید را رسید روی ربل نشاز دکمهای قلب من دون دون شول شدم گفتم این یه ماجزه است خیر شد به آسمان همیاستوارا دون دون گل شدن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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش خدا فزی تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای یاش نازنینی ای آخرین تیکه ییم جُرچینی ای یاش